درست ده روز بعد پدر ویل ما را با اتومبیل به فرودگاه گت رساند نیتین کشان کشان چمدان ها را روی چرخ دستی گذاشت و من چندین بار از ویل پرسیدم که آیا راحت است طوری که شد آقای ترینر دستش را روی شانه ویل گذاشت و گفت مواظب خودتان باشید، سفر خوبی داشته باشید چشمکی به من زد و گفت خیلی هم شیطنت نکنید. خانم ترینر نتوانست از کارش مرخصی بگیرد و بیاید. من با خودم می گفتم لابد نمیخواهد با شوهرش دو ساعت توی اتومبیل تنها باشد. ویل سر تکان داد ولی چیزی نگفت. در طول راه هم سکوت اختیار کرده بود. به بیرون پنجره خیره بود و نمیشد چیزی از نگاهش خواند. به من و نیتن که از ترافیک و وسایلی که از روی حوازپرتی برنداشته بودیم حرف می زدیم، بود. حتی وقتی هم از سالن عبور می کردیم، هنوز مطمئن نبودم که کار درستی کردم. خانم ترینر قلبن راضی به این سفر نبود. اما از روزی که ویل با برنامه جدید موافقت کرد، می دانستم که جرعت مخالفت ندارد. آن هفته پیدا بود از صحبت با ما واهمه دارد. کنار ویل می نشست و فقط از مسائل پزشکی حرف میزد. گاهی هم خودش را در باخچهش سرگرم می کرد و با حرص زیاد شاخ و برگ گل و را می بارید. وقتی داشتیم می رفتیم کارت پرواز بگیریم همینطور که دفترچه یادداشتم را ورق می زدم گفتم قرار کارکنان هواپیمایی بیان و کمک کنن. نیتن گفت به نطرت که دم در ورودی می فرستن. ولی سندلی چرتر ابزار پزشکی شکستنیه. خودم سه دفعه بزن پشت تلفن یادآوری کردم باید مطمئن مطمئنشیم که سر بردن وسیله پزشکی ویل به داخل هواپیما مسخره بازی در نمیارم جامعه اینترنتی معلولان کلی اطلاعات و تذکرات به من داده بود با یک فهرست. حقوق قانونی را هم شهر داده بودند من سه بار به کارکنان خط هوایی یادآوری کرده بودم که صندلی رو به دیوار به ما بدهد. و اول ویل باید سوار هواپیما شود و تا وقتی ما به در ورود به باند هواپیما نرسیدیم نباید از صندلی چرخدارش جابجا میشد. بعد نیتن فرمان صندلی چرخدار را به حالت دستی در میآورد، با دقت آن را جمع می کرد و پدال را قفل می کرد. خودش شخصا نظارت میکرد که صندلی چرخدار در نهایت احتیاط بارگیری شود تا هیچ صدمه ای نبیند. برای هشدار به باربرها برچسب مخصوص می‌زدند تا با احتیاط کامل حمل شود. سه صندلی در یک ردیف به ما اختصاص داده بودند. برای همین در صورت لزوم نیتن می توانست بدون اینکه نگاه کسی به ما باشد، کارهای پزشکی ویل را انجام دهد. کارکنان خط هوایی اطمینان داده بودند که دسته صندلی بالا می رود. در نتیجه، موقع انتقال ویل به صندلی هواپیما بدنش با آن برخورد نمی کند که کبود شود. در طول پرواز، ویل بین من و نیتن می نشست. از طرف هم، ما زودتر از همه از هواپیما پیاده می شدیم. من اینها را در فهرست فرودگاه نوشته بودم. صفحه فهرست هتل بعد از آن بود. برنامه مسافرت و صفحه فهرست روز پیش از سفر هم قبل از آن. با وجود همه این تدابیر باز هم دلشوره داشتم هر باری که به ویل نگاه می کردم از خودم می پرسیدم آیا کار درستی کردم ویل تازه شب قبل اجازه سفر را از پزشکش گرفته بود غذای کمی خورده و بیشتر از روزهای دیگر خوابیده بود ظاهراً از مریضیش خسته نبود بلکه از زندگی خسته بود خسته از برخوردهای ما از تلاشهایی که در صحبتهای ما تا تا کنیم. از از ما اراده قاطعی که به خرج می دادیم تا شرایط را برایش بهتر کنیم. ویل همیشه تحمل می کرد ولی حس میکردم بیشتر مواقع دلش میخواهد تنهایش بگذارم. نمیدانست تنها کاری است که نمی انجام بدهم. با دیدن دختر یونیفرمپوش پوش تخت شاسی به دستی که لبخندزنان به سرعت به طرف ما میآمد گفتم: اومد نیتن زیر لب گفت: خب، حالا کمک می تو تا راحت سوار هواپی ماشیم. اینکه خیلی لاغر مردنیه. گفتم: مشکلی پیش نمیاد مطمئن باش هیچ مشکلی پیش نمیاد. از وقتی تصمیمم را گرفته بودم و فهمیدم که میخواهم چه کار کنم این جمله تکی کلامم شده بود. بعد از صحبتی که آن روز با نیتن در خانه داشتم با همه وجودم میخواستم به آنها ثابت کنم اشتباه میکنن. حالا که نمیتوانستیم به سفری که تدارکش را دیده بودم برویم، به این معنی نبود که ویل نمیتواند کار دیگری انجام بدهد. دوباره در اینترنت پیام گذاشتم و پرسیدم چه جای مناسبی برای ویل که دوره نقاهت را میگذراند وجود دارد. آیا کسی میداند کجا میشود رفت؟ دمای هوا مهمترین نکته بود. هوای انگلیس زیادی متغیر بود. هیچ چیز بدتر از این نبود که کنار دریا باشی و ناقافل باران بگیرد اواخر ژوئیه تقریبا هوای کل اروپا گرم است در نتیجه ایتالیا و یونان و جنوب فرانسه و دیگر نواحی ساحلی منتفی بود نظر خاصی داشتم میدانستم که ویل دریا را دوست دارد اما مشکل اینجا بود که فرصتی نداشتیم و باید ترتیب سفر را ظرف چند روز میدادیم شانس کمی برای عملی شدنش وجود داشت خیلیها در اتاق گفتگو اظهار تأسف و همدردی کرده و چه داستانهایی که از داتوریه تعریف نکردند. به شدت دل مشغول داستان ویل شده بودند. چند نکان هم پیشنهاد کردند که می توانستیم برویم. اما هیچ کدام به نظرم جالب نیامدند. یا مهمتر اینکه که به نظرم نیامد ویل خوشش بیاید. واقعا نمیدانستم چه باید بکنم. با این همه بارها فهرست پیشنهادات را بررسی کردم. میدانستم هیچکدام هیچ کدام خوب نیستند. ریچی طرفدار دو آتشه ما در اتاق گفتگو بود که سرانجام به کمک آمد. بعد از ظهر روزی که ویل از بیمارستان مرخص شد، ریچی نوشت آدرس پست الکترونیکیت را بده. به سر امویم مسافرتی دارد. با او صحبت کردم. به شماره تلفنی که داد زنگ زدم و با مرد میانسالی که لحجه ی قلیز داشت حرف زدم. وقتی گفت که چه برنامه در ذهن دارد مرا سخت سپاسگزار خودش کرد. ظرف دو ساعت ترتیب همه چیز را دادیم. چونن سپاسگزار بودم که عشق از چشمانم سرازیر شده بود. گفت عزیزم کاری نکردم. تو فقط مراقب باش این جوان اوقات خوشی داشته باشد. وقتی حرکت کردیم من هم به اندازه ی فیل بیجان و بیجان بودم. روزها درگیر بودم تا به تجهیزات خوب مسافرتی برای توانخواهان دسترسی پیدا کنم. با این حال تا صبح روزی که آزم سفر شدیم هنوز مطمئن نبودم که حال ویل آنقدر خوب باشد که به بیاید. حالا که با چمدان توی فرودگاه شلوخ نشسته بودم و به فیل ساکت و رنگ پریده نگاه می کردم دوباره از خودم پرسیدم، آیا من اشتباه فکر کردم؟ قلبم هری فرو ریخت اگر دوباره مریض میشد چه اگر مثل اسبسواری اصلا خوشش نمی آمد چطور اگر درست متوجه وضعیتش نشده باشم چطور شاید ویل به سفر حماسی احتیاج نداشت آیا بهتر نبود در خانه میماند و در روزی توی تخت خودش استراحت میکرد ولی فرصتی باقی نمانده بود که دو روزش را علکی تلف کنیم. آخرین فرصت بود و تنها شانس من. نیتن که از بخش از گمرک برمی گشت گفت پرواز ما را اعلام کردم. به من نگاه کرد و ابرو بالا داد. من نفسی تازه کردم و گفتم. بریم. خود پرواز جدا از دوازده ساعت طولانی که توی آسمان بودیم، آنقدر که من وحشت داشتم سخت و آور نبود. نیتن تعویزهای همیشگی را زیر پتو انجام داد و ثابت کرد پرستار کار کشته است. کادر پرواز مشتاق و ملاحظه کار بود و همهی حواسشان به صندلی چرخدار ویل بود. همانطور که قول داده بودند، اول ویل را نشاندند بدون هیچ صدمه ای او را روی صندلیش چا دادند. بعد هم ما دو طرفش نشستیم. بعد از یک ساعتی که در آسمان بودیم بالای ابرها تازه متوجه شدم که اگر صندلی ویل کچ میشد جای ویل آنقدر محکم هست که تعادلش را از دست ندهد. ویل به اندازه سایر مسافرین در امنیت بود. جایش روبروی صفحه تلویزیون محکم بود. نمی نمی‌توانست تکان بخورد و نه کاری انجام دهد. آن بالا، در آن ارتفاع سی هزار پایی، چیزهای بسیار بسیار اندکی بودند که ویل را از سایرین متمایز کرد. ویل چیزی خورد و فیلم تماشا کرد. بیشترش را هم خواب بود. من و نیتن محتاطانه به هم لبخند میزدیم و میکوشیدیم با نموت کنیم اوزا رو است. من به بیرون پنجره زل زدم. افکارم مثل ابرهای زیر پای من در هم و بر هم و آشفته بود. هر کاری میکردم نمی توانستم این فکر را از خودم دور کنم که این کار من تلاش در جهت پشتیبانی از ویل نبوده بلکه فقط دنبال ماجر جویی خودم بودم. من لوک کلارک، واقعا داشتم به آن طرف کره زمین پرواز میکردم قادر به درکش نبودم چون نمیتوانستم به چیزی جز فیل فکر کنم. حس خواهرم را داشتم وقتی توماس را به دنیا آورد. به نوزادش زل زده و گفته بود انگار دارم از توی یک گیف نگاه میکنم. دنیا به من و این بچه خلاصه شده. توی فرودگاه که بودیم پیام فرستاده بود. موفق میشوی. کلی بهت افتخار میکنم. بوس. گوشی را روشن کردم و پیام را دوباره خواندم. یکباره بار زده شدم. شاید به خاطر انتخابش در کلمات بود. شاید هم خسته بودم و وحشت زده و باورش برایم سخت بود که تا اینجا یک کار آمدم سرانجام برای اینکه ذهنم را آزاد کنم، تلویزیون مقابلم را روشن کردم و با حواس به فیلم کمدی آمریکایی زل زدم. تا بعد که آسمان اطرافمان رو به تاریکی رفت. وقتی چشم باز کردم، مهماندار هواپیما را بالای سرمان دیدم که صبحانه آورده است. ویل داشت با نیتن در مورد فیلمی که با هم دیده بودند حرف می زد. بعد به رغم همه مشکلاتی که کشیده بودیم، در کمال شگفتی دیدم که فقط یک ساعت مانده تا در موریس فرود بیاییم. فکر نمی کنم تا وقتی پایمان به فرودگاه بینال المللی سرسی وگی رمگولم نرسید باورم شده باشد که واقعا به سفر آمده ایم. با خستگی تمام از بخش ورود گذشتیم. بدنمان از پروازی که داشتیم همچنان خشک و خسته بود. با دیدن تاکسی مخصوصی که برای ما تدارک دیده بودند نفس راحتی کشیدیم. در اول صبح ورودمان همینطور که تاکسی با سرعت میگذشت. و ما را به محل اقامتمان میبرد اندکی با جزیره آشنا شدم. رنگ ها درخشانتر از انگلستان بودند. آسمان تابناکتر بود، آبی نیلگون که در بیکرانگی مف می شد و به تدریج گسترش می یافت و تیره تر و تیره تر می شد. جزیره سرسبز بود، پر از گلوگی ها. با جریب جریب کشتنهی در هاشیه. دریا همچون خطی از جیوه در میان تپه های آتش بشانی خاصی داشت. فضا دود زده و مملو از عطر چیزی شبیه به زنجبیل بود. خورشید در آسمان بالای بالا بود و نور تابناکش باعث شده بود کرمکوری نگاه کنم. آنجور که من خسته و بیرمق بودم مثل این بود که کسی از خواب بیدارم کرده و دارد صفحات یک مجله لوکس را نشانم می ده. حتی در آن لحظاتی که چشم و گوشم درگیر مناظر ناآشنای اطرافم بود، باز هم از فیل غافل نبودم و حواسم کاملا به او بود. به صورت رنگ پریده و خستش نگاه می کردم. سرش انگار روی شانه‌اش افتاده بود. بعد وارد مسیر اتومبیل روی شدیم که دو طرفش ردیفی از درختان نخل بود. مقابل ساختمان یک طبقه ای ایستادیم. راننده فوری پیاده شد و وسایلمان را تحویل داد. چای یخت تعارف کردند و گفتند که گشتی در اطراف هتل بزنیم. ولی ما رد کردیم. به اتاق ویل رفتیم و چمدانش را خالی کردیم. او را در رخت خواب خواباندیم. پیش از اینکه پرده را بکشیم ویل خوابش برد و ما آنجا بودیم. بالاخره موفق شده بودم. بیرون اتاقش ایستادم و سرانجام نفس راحتی کشیدم. نیتن هم ایستاده بود و بیرون را تماشا می کرد. به سفید که بر صخره مرجانی می زل زده بود. یک بار چشمانم بشکالوت شدند. نمیدانم چون اولین سفرم بود یا چون به عمرم به مکانی به این زیبایی نرفته بودم. نیتن با دیدن قیافه من گفت همه چیز رو برام. بعد در نهایت تعجبم جلو آمد و با محبت تمام و قلم کرد لو راحت باش چیز به خوبی پیش میره جدی میگم کارت عالی بود از روز سه دیگر میشد به ویل امیدوار شد. ویل چلاهش ساعت اول را کلن خواب بود. بعد به طرز حیرت انگیزی حالش بهتر شد. رنگ به پوستش بازگشت و دیگر از سایه های آبی دور چشمانش خبری نبود. اسپاسم بدنش کاهش یافته و دوباره شروع به غذا خوردن کرده بود. صندلی چرخدارش را آهسته در امتداد میزهای بیپایان و مملو از انواع خوردنیها ها میراند و به من میگفت که در بشقابش چه بگذارن. وقتی به زور از من میخواست غذاهایی را که هرگز نخورده بودم امتحان کنم میدیدم که حالا دیگر خودش است. خوراک کاری پر ادویه با پختی آفریقایی، اروپایی و غذاهای دریایی که اسمشان را نمی دانستم. ویل خیلی زودتر از من خودش را با محیط تطبیق داد و احساس راحتی کرد. البته چیز عجیبی نبود. نباید فراموش میکردم که او بیشتر عمرش را در سفر گذرانده بود و همه جای این کره خاکی و همه این سواحل قلم روش بودند نبخش فرعی خانه پدرش زیر سایه آن قلعه. هتل، طبق قولش صندلی چرخدار مخصوصی با چرخای پند در اختیار من گذاشت. صبحها اغلب نیتن ویل را سوار می کرد و سه نفری در امتداد ساحل قدم می زدیم. من همیشه چتر آفتابی همراه داشتم تا دا اگر آفتاب تند شد بالای سر ویل بگیرم. اما هیچ وقت پیش نیامد. آن وخش جنوبی جزیره به خاطر نسیم دریاییش معروف بود. دمای هوا از 24 درجه سانتیگراد بالاتر نمی رفت و این برای آن فصل چیز عجیبی بود. میتوانستیم در ساحل کوچکی کنار سخره که دور از دید ساختمان اصلی هتل بود بیستیم و از فضا لذت ببریم. صندلی خودم را باز میکردم و کنار ویل زیر درخت نخل میگذاشتم. و دوتایی نیتن را تماشا میکردیم که موج سواری یا اسکی روی آب میکرد. گاهی از همانجا که روی شن نشسته بودیم با حیجان زیاد فریاد تشویق سر میدادیم. فوش هم می میکردیم. اوایل کارکنان هتل تلاش زیادی میکردند به ما کمک کنند. تعارف میکردند که صندلی چختار ویل را راه ببرند به زور لیوان آب سرد به او میدادند. بعد ما برایشان توضیح دادیم که نیازی به این کارها نیست. آنها هم با خوشرویی کنار کشیدند. گرچه خوشم میامد وقتی میدیدم در لحظاتی که همراه ویل نیستم، مستخدممها یا کارکنان پذیرش کنارش می و با او گپ میزنند یا برایش از جاهایی میگویند که به نظرشان ما باید میدیدیم. پسر جوان دراز لغغوی بود به نام نیدیل که در غیبت نیتن احساس وظیفه میکرد و خودش را پرستار ویل میدانست. یک روز آمدم و دیدم که نیدیل و یک نفر دیگر ویل را با احتیاط از روی صندلی چرخدار بلند کردند و گذاشتند روی تخت توشکدار مخصوص آفتاب گرفتند که قبلا زیر درخت مان گذاشته بودند. وقتی در امتداد ساحل شنی قدم برمی‌داشتم و به طرفشان می‌رفتم، نیدیل شستش را به علامت تصدیق بلند کرد و گفت: حالا بهتر شده. هر وقت آقای ویل خواستند به صندلی چرخدارشان برگردند، فقط خبر بدهید. می آیم. خواستم اعتراض کنم و بگویم که نباید هر میدادند ولی ویل چشمانش را بسته بود و با چنان رضایت خاطر غیر دراز دراز کشیده بود که دهانم را بستم و فقط سرتکان دادم. وقتی نگرانیم با بت سلامتی ویل برطرف شد، کم کم حس کردم واقعا در بهشت دستم. به خواب نمی دیدم روزی پایم به چنین جایی برسد. صبح با صدای امواج دریا که آرام به صاحب می و آواز پرندگان ناشنایی که لای شاخه های درخت همدیگر را صدا میزدند زدن بیدار می شدم. به به اتاق اتاق نور آفتاب که لابلای برگ درختان میرقصید چشم چشمی دوخدم. از اتاق بغلی صدای حرف میشنیدم و میفهمیدم که نیتن و ویل پیش از من بیدار شدن. سرونم و مایو می پوشیدم و از گرمای خورشید بر شانه و پشتم لذت می بردم. بوستم کم کم داشت که کمک می زد. ناخونم سفید شده بود. داشتم از خوشیهای های حضور در آنجا لذت فوق العاده می بردم. قدم زدن در ساحل، خوردن غذاهای جدید، شنا در آب گرم و زلال جایی که ماهی سیاه از پشت سخراهای آتشفشانی سرک میکشید و محجوبانه نگاه هم میکرد یا دیدن خورشید سوزان که غروب میکرد و در افق فرو میرفت. به تدریج ترخی این چند ماه گذشته رنگ باخت و با نهایت شرمساری باید بگویم به ندرت یاد پاتریک می افتادم. حالا دیگر روزهایمان مثل هم سپری می شدند. با هم صبحانه میخوردیم. هر با هم سر میزهای سایهدار کنار استخر. ویل اغلب سالاد میوه میخورد که من با دستم دهانش میگذاشتم. بعد که اشتهایش بیشتر شد، گاهی پشتش پنکهی که موز میخورد. سپس به ساحل میرفتیم و همانجا میماندیم. من کتاب میخوندم. ویل آهنگوش میکرد. نیتن هم تمرین ورزش آبی میکرد. ویل دائما به من میگفت که کاری کنم. لی میگفتم نه، فقط میخواستم کنار خودش باشم. اما بعد وقتی اصرارش را دیدم یک روز صبح به موج سووادی و قایق سواری رفتم. اما بیشتر دوست داشتم دور بر خودش باشم. گاهی که نیدیل در دسترس بود و استراحتگاه خلوت نیتن و نیدیل ویل را در آب گرم استخر میگذاشتند. نیتن دستش را زیر سر ویل میگذاشت تا روی آب شناور بماند. وقتی توی آب بودند، ویل اغلب حرف زیادی نمی زد، رضایت از شهرهش می بارید. گوی بدنش و هیجانی را که از مدتها پیش به فراموشی سپرده بود به خاطر می آورد. بدنش که مدتها بیرنگ بود حالا تلایی شده و جای زخم روی بدنش سفید شده بود و داشت محو می شد. اگر بلو سنش نبود دیگر احساس ناراحتی نمی کرد. وقت نهار به یکی از رستوران استراحتگاه ساحلی می رفتیم. زمین کل مجموعه کفوش بود و پله و شیب اندکی داشت. در نتیجه ویل آزادی عمل داشت و می توانست با صندلی چرخدارش حرکت کند. شاید نکته کوچکی بود. ولی برای ویل این فرصت فراهم می شد که بدون همراهی یکی از ما برود و برای خودش نوشیدنی سفارش بدهد. چنین چیزی یکی از عوامل سرخوردگی و خشم ویل را فرو می نشند. نیازش به دیگران. البته هیچ کدام ما خیلی این و نمی رفتیم. هر کجا که بودیم لب ساحل یا کنار استخ یا حتی جکوزی همیشه سر و یکی از آن کارکنان متبسم پیدا می‌شد که برای ما نوشیدنی آورده بود. نوشیدنی که به خیال خودش ما دوست داشتیم. معمولا هم با گل کوچکی صورتی این شده بود. حتی وقتی هم در لب ساحل دراز کشیده بودیم چرخ کوچکی از کنارمان رد می شد و پیشخدمت تسم آب معدنی، آب میوه یا چیزی قویتر تعارف میکرد. بعد از ظهرها که دمای هوا به بالاترین حد می رسید فیل به اتاقش برمیگشت و یکی دو ساعت می خوابید. من هم در استخر شنا یا کتاب میخوااندم شب دوباره به هم ملحق می شدیم و می رفتیم در رستوران لبه ساحل شام می خوردیم. مذه ککتل خیلی زود به دهانم افتاد و به خوردنش عادت کردم. نیدیل فهمیده بود که اگر نیه مناسبی به ویل بدهد و لیوان بلند در جالیوانی صندلی چرخدارش بگذارد دیگر نیازی نیست منو نیتن به ویل کمک کنیم. شبها سه نفری نشستیم و از دوران کودکی من حرف می زدیم. از دوست دختر و دوست بسر من می گفتیم. از اولین شغلمان من، خانواده های من و سفرهایی که رفته بودیم و من می دیدم که ویل آرام آرام از لاک خودش بیرون می آید. ویل فرق کرده بود. ظاهرا آنجا آرامشی به او داده بود که در طول دوران آشنایی در او ندیده بودم. یک بار وقتی سر بوفه شام ایستاده بودیم و قضا میکشیدیم نیتن گفت مثل اینکه بهش خوش میگذره نه؟ آره فکر کنم نیتن به طرف من خم شد دلش نمیخواست ویل بفهمد که داریم راجب به او حرف میزنیم اه. میدونی لو؟ مزرعی که قبلا ترتیب سفرشو داده بودی و ماجراجویای از اون دست واقعا عالیه. ولی به نظرم جایی مثل اینجا تاثیر بیشتری داره به نیتن نگفتم که روز اول چه حال و روزی داشتم همان موقع که اتاقهای من را تحویل می گرفتیم بعد جوری دلشوره داشتم و همینطور پیش خودم حساب می که چند روز دیگر برمیگردیم خانه مجبور بودم این ده روز همه ی تلاشم را بکنم تا یادم برود واقعا چرا آنجا هستیم قرارداد شش ماهه تقویمم که با دقت تمام علامت زده بودم همه ی چیزهایی که قبلن پیش آمده بود باید در لحظه زندگی می‌کردم. و وین را تشویق می کردم که مثل من عمل کند باید شاد می بودم با این امید که ویل هم شاد شود یک دیکه دیگر خربوزه برداشتم و لبخند زدم گفتم پس بعدا چیکار میکنه کاراگ یا گوش اون از دیشب هنوز سرجاش بر نگشته